امروز یه عده در بخش مختلف دنیای اسلام به نام گروه های تکفیری و وهابی و سلفی و علیه ایران علیه شیعه علیه تشیع دارن تلاش میکنن کارهای بدی میکنن کارهای زشتی میکنن اما اینا دشمن اصلی نیستن اینا همه بدانند، دشمنی میکنند، حماقت میکنند اما دشمن اصلی اون کسی است که اینها را تحریک میکند اون کسی است که پول در اختیارشون میگذارد اون کسی است که وقتی انگیزه اونها اندکی ضعیف شد به وسائل گوناگون اونها رو انگیزدار میکند اون کسی است دشمن اصلی که تخم شکاف و اختلاف رو بین اون گروه نادان و جاهل و ملت مظلوم ایران می افشاند اینها اون دست پنهان سرویس های امنیتی و اطلاعاتی است لذا ما مکرر گفتیم این گروه های بیعقلی که به نام سلفیگری به نام تکفیر به نام اسلام با نظام جمهوری اسلامی مقابله میکنن ما به اینا گفتیم ما شما رو دشمن اصلی نمیدونیم ما شما رو فریب خورده میدونیم به اینها گفتیم لئن بسطه علی یدکل لتقتلنی ما انا به باسوزن یدی علی کل اقتلک اینی الله رب العالمین تو اگر خطا میکنی اشتباه میکنی کمر به قتل برادر مسلمان و خودت میبندی ما توی نادان و جاهل را کسی نمیدانیم که بایستی کمر به قتل او ببندیم البته از خودمون دفاع میکنیم هر کسی به ما حمله بکند با مشت محکم ما مواجه خواهد شد این طبیعی است اما، تقدیم اینها دشمنان اصلی نیستن فریب خورده هستند و دشمن اصلی اون دشمن پشت است اون دست نچندان پنه ها نیست که از آستین سرویس امنیتی بیرون میآید و گریبان مسلمانان رو میگیره اونها رو به جان هم می اندازه.